فریده هامه سلام بر دوستان عزیز از این برنامه قرار با هم داستان به دنیا آمدن زال پدر رستم و یکی از کلیدی ترین شخصیت های شاهنامه فردوسی رو بشنویم پس با ما همراه باشید تا با هم داستان شیرین به دنیا آمدن و بزرگ شدن زال رو پی بگیرید در دوران پادشاهی منوچه پهلوانی از پهلوانان ایران که سردار سپاه منوچهر شاه بود به نام سام نریمان فرزندی نداشت و خداوند اون از نعمت داشتن بچه و یک فرزند تا سالها محروم نگاه داشته بود و اون هر شب به درگاه خدا راز و نیاز و نیایش می کرد تا خداوند به اون فرزندی بنایت کنه سرانجام پس از سالها همسر سام باردار شد و بعد از گذشتن دوره بارداری پسری به دنیا آورد بسیار تندرست، سالم و خوش سیما و فقط یک اشکال کوچیک در وجود اون بود تمام موی سر موجه و همه موهای اندام اون سفید بود درست مثل اینکه این بچه پیر به دنیا اومده باشه به همین دلیل نام اون رو زال گذاشتند مدتی یک هفته از تولد زال گذشته بود ولی نه همسرش و نه هیچ کدوم از ندیمه های همسرش این اتا جسارت رو نداشتند که به سام بگن که چنین پسری به دنیا اومده بلاخره یکی از دایه ها دل به دریا زد و پیش سام رفت و گفت ای سام دلیل و پرلبون بدون که همسرت پسری زیبا و تندرست به دنیا آورده اما هم تنها مشکلش اینه که موهای سر و موجه و عبروانش همه سپیده سام خیلی ناراحت شد و به سرعت به درونه همسرا و اقامتگاه همسرش رفت و وقتی که اون بچه رو با موها و ابرو و موژهای سفید دید آهی کشید و سرش رو به سوی آسمان بلند کرد و گفت ای پروردگار بزرگ آیا من گناه بزرگی کردم یا به کیش اهریمن و شیطان پیوستم که تو چنین مجازاتی برای من در نظر گرفتی اگه از من بپرسن که این بچه چرا اینجوریه چه پاسخی باید بدم این بچه بچه دیوه بچه من نیست همه ما میدونیم که بچه هایی که با مو و ابرو و سفید به دنیا میان حاصل یک اختلال کوچک جنتیکی و هیچ گناهی ندارند و یا دلیل هیچ گناهی از جانب پدر و مادر نیستند ولی در اون زمان این مسئله بسیار نادر و کمیاب بود و سام نریمان فکر کرد که خداوند با دادن فرزندی با این شکل و شمایل داره مجازاتش میکنه برای همین فرمان داد که اون بچه رو ببرند و از جلوی چشم اون و همه مردم دورش کنند ندیمه ها و خدمت که عصبانیت و خشم سام رو دیدند چاره ای نداشتند جز فرمان برداری و اطاعت از دستور سردار سپاه زال رو که هنوز یک کودک شیرخاره کوچیک بود بلبورز کوه بردند و اون رو در ای روی تخت سنگی بی و تنها رها کردند چند ساعت که از رفتن ندیمه ها و خدمت سام گذشت کودک تنها شروع کرد شیون و زاری هوا رو به سردی می رفت و خورشید در حال غروب کردن بود و باد آرومی می وزید. ناگهان خروش عجیبی توی که کوهستان پیچید و پرندهی قولاسا با بالهای رنگارنگ در آسمان عدیدار شد این پرنده بیمانند و زیبا و بزرگ همون سیمرغ افثانهیه که در قاری بالای البرزگو زندگی می کرد سیمرغ که برای پیدا کردن خوراکی برای جوجه از آشیونه بیرون اومده بود چشمان تیزبینش کودکی کوچک و برهنه رو روی تخت سنگ بی پناه و تنها دید و در چشم به هم زدنی خودش رو به کودک رسوند و با چنگاله های نیرومندشون کودک رو بلند کرد و به سمت قله کوه برد جایی که در اون غار آشیانه داشت پس از اینکه به آشیونه رسید زال رو مثل تعمهی که شکار کرده باشه مقابل بچه ها و جوجه هاش گذاشت که به جای قضا این طفل بیگناه رو بخورند اما اون بچه ها، اون جوجه های وقتی که زال رو با اون حالت زار و نزار و نحیف و بیپناهش دیدند و گریه و زاریش رو شنیدند دلشون به رحم اومد سیمرغ شگفت زده شد که جوجه هاش به جای اینکه اون بچه رو تومه خودشون کنند و غذای شبشون کنند شروع کردن به بازی کردن با اون کودک کار کرد بچه ها میلی به خوردن نداشتند نداشتن بلکه اونو مثل یک همبازی جدید مثل یک دوست در جمع خودشون پذیرفتند و شروع کردن به بازی کردن سیمرغ هم مهر زال به دلش افتاد و تصمیم گرفت که اونو در کنار جوجه های خودش پرورش بده روزها و ماها و سالها گذشت و سیمرغ مثل مادری دلسوز و دایهی مهربان از زال پرستاری کرد زال هم روز به روز بزرگتر می و کم کم با کمک سی مرغ یاد گرفت که چطور می تونه حیوانات وحشی رو شکار کنه و برای خودش غذا فراهم کنه با نیزههایی که میساخت به شکار پرنده ها و جانوران کوهستان میرفت و اونها را با شیانه سیمرغ میآورد تا هم خودش غذایی بخوره و هم بچه های سیمرغ از اون غذا استفاده کنند سیمرغ همه ی راه و رسم شکار و زندگی رو به ظال یاد میداد. و همینطور اینکه چطور شد که زال با سیمرغ و بچه ها آشنا شد رو از زبان سیمرغ شنید اونکه توی طبیعت و به صورت وحشی بزرگ شده بود اندامی ورزیده و موهای بسیار بلند و سپید داشت رهگذرایی که از بلبرز کوه میگذشتند آوازه این جوون وحشی و عجیب رو با خودشون به شهر بردند و این آوازه همه جا پیچید تا اینکه این سخنان بالاخره به گوش سام پهلوان رسید و اون که شنیده بود خدمتکاراش زال رو در البرز کوه رها کردند و خودش اندیشید که این جوان هیچ کس نیست جز همون پسری که در نوزادی در کوه البرز رها شده بود اون که فکر میکرد زال در همون نوزادی جونشو از دست داده و کشته شده و تعمه حیوانات وحشی البرز کوه شده بسیار پریشون شد بر همین اسنا و در حالی که سان در این افکار بود شبی خواب عجیبی دید که بر بالای کوه الورز یا کوه هند درفشی یا پرچمی برافراشته شده و جوانی بسیار زیبا خوش اندام و تنومند و در پشت سرش سپاهی گران صف کشیدند و از الورز کوه در پایین میاد. سمت چپ جوان موبدی بود و سمت راستش یک مرد خردمند و نامدار. اون دو مردی که همراه این جوان بودند با پرخاش به سام میگن که این مرد ناپاک از خدا شرم نکردی که یک کودک بی گناه و بی پناه رو در کوهستان رها کردی اگر موی سپید ننگه یا جرمه تو که الان به پیری رسیدی پس باید دوچار همین عقوبت و همین بلا بشی چون تو هم الان موهای سر و صورتت سپید شده موی سپید که جرم نیست، گناه نیست تو پسر خودت رو روندی اما سی به اون مهر ورزی تو چجور پرلوونی هستی که به اندازه یک مرق هم دلت برای فرزندت نسوخت و باید از کاری که کردی شرمنده و خجالت زده باشی سام آشفته پریشون از خواب بیدار میشه موبده و خواب گزاراش رو خبر میکنه تا تعبیر این خواب و بهش بگن همه اونها از پیر و جوان پهلوان رو به باد سرزنش میگیرن که چرا با فرزندش مهربون نبوده اونها میگفتن که حتی جونه برای وحشی هم به فرزند خودشون مهر و محبت دارند و خدا رو سپاس میگن اما تو با ترد کردن فرزندت و رها کردنش در کوهستان ناسپاسی کردی سام پهلوان، شرمگین و پشیمان دلش نرم شد و فهمید که موی سپید ننگ نیست ولی بیمهری به فرزند ننگه برای همین باو چند تن از نزدیکانش به سمت البرز کوه ره شد تا فرزند عزیزش رو که در کودکی رها کرده بود پیدا کنه وقتی البرز کوه رسیدند کوهی دیدند سر به فلک کشیده بلند و بسیار سعب العبور که قله اون در میان عبرها پنهان شده بود هر کاری می کردند راهی برای نفوظ به این کوه و بالا رفتن از اون پیدا نمی کردند راه سخت و صعب العبور بود سام پهلوان دستهاشو به سوی آسمان بلند کرد و بانگ زد ای آفریننده جهان من که از کرده خودم پشیمانم و اکنونم اومدم تا گذشته رو تلافی کنم اگر این کودک از نژاد منه و فرزند منه به من کمک کن تا اون رو در این کوه پیدا کنم در همین حال سیمرغ که در آسمان پرواز میکرد صدای سام رو شنید و دونست که اون به جستجوی فرزندش اومده و دلش به حال سام سوار سوخت به نزد زال رفت و گفت پسر عزیزو گرامی من من تو رو مثل بچه های خودم دوست دارم و تا به دوری تو ندارم اما الان پدر واقعی اومده و دنبال تو میگرده و از کاری که در گذشته با تو کرده بسیار پشیمان و ناراحته بنابراین تو باید خودت رو آماده کنی به سمت پدرت بری و به اجتماع مردم و انسان ها برگردی زال اصبانی شد و گفت پدر من و مادر من و همه زندگی من تویی چرا باید به سمت پدری برم که منو در کودکی از خودش روند سیمرغ شروع کرد به نصیحت کردن زال و اینکه به اون گفت تو باید به میان انسانها برگردی و راه و رسم زندگی انسانها رو یاد بگیری دانش و هنر بیاموزی و یک روزی جانشین پدرت به عنوان سردار سپاه ایران بشی اما اینو بدون که من همیشه به فکرتم همیشه همراهتم و مراقبت خواهم بود این پر رو بگیر و هر موقع که دوچار سختی و مشکلی شدی این پر رو بخشی از این پر رو آتیش بزن اونو در آتش بنداز و من با خبر میشم و خودم رو به تو میرسونم و هر کمکی که لازم باشه بهت میکنم زال با چشمانی پر عشق و ناراحت خواهران و برادرانش که همون بچه های سیموق بودن رو در آغوش گرفت و ازشون خداحافظی کرد و به سمت پایین کوه اومد سام که همچنان در حال راز و نیاز و نیایش با پروردگار بود مرقی بسیار بزرگ و زیبا رو در آسمون دید که با چنگالهای نیرومندش که اتفای جوان خوش اندام و سپید موی رو گرفته سام با دیدن قد و بالا و اندام ورزیده و چهره زیبا و درخشان زال شگفت زده شد به زانو درآمد و با نال و زاری گفته ای پسر گرامی من از بیدادی که با تو کردم پشیمونم دلت رو بر من نرم کن و پوزشم رو بپذیر بیا تا از گذشته یادی نکنیم و زندگی جدیدی رو با هم شروع کنیم من پیمان می بندم و سوگند یاد می‌کنم که از این به بعد هر خواسته ای که داشته باشی برآورده کنم زال که زاری و پشیمانی پدرش رو دید اونو بخشید و گفت پدرگرامی ای پدر گرامی برخیز بلند شو و من پشیمانی و پوزشت رو میپذیرم زندگی سختی رو بدون تو گذروندم و, و از مهر تو به عنوان پدر بی بهره بونم اما الان که متوجه اشتباهت شدی من با تو به میان مردم و به خانه برمیگردم سام از شنیدن این سخنان شاد شد لباسی زیبا و آراسته که به همراه آورده بود رو بر تن زال کرد و اون رو بر اسبی مجلل و زیبا نشوند و با خودش به شهر آورد. سیمرق از اینکه داشت از زال جدا می شد بسیار اندوهگین بود و عشق در چشمانش حلقه زده بود. اما چون میدونست که این کار به صلاح زال و چه بسا که در آینده به صلاح ایران و ایران زمینه با این قم و درد کنار آمد و با زال خداحافظی کرد و اون رو به میان مردم فرستاد. خب عزیزان من. بخش اول از داستان زاده شدن زال رو با هم شنیدیم و از شما دعوت میکنم که ما رو در ادامه این داستان همراهی کنید و در هفته های آینده ادامه داستان زندگی زال رو با هم پی بگیریم تا درودی دیگر به